إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مغل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه ایزا زلزلقی الأرض زلزاله شکر و سپاس خداوند منان را که به ما این توفیق را عنایت فرمود تبار دیگر در این مکان مقدس و روز مبارک کرده همه از خداوند منان برای خودم توفیق گفتار نیک را خواهانم و امیدوارم که الله مهربان به بنده و همگان توفیق اعمال صالحه را نصیب بفرماید. در این آیه که بنده خدمت شما خواندم و آیات بعد از این آیه سوره زلزله است تین یکی از سوره هایی که قبل از هجرت پیانبر بزرگوار اسلام نازل شده یعنی سوره مکی است. آیات و سوره های قرآن یا قبل از هجرت پیانبر بزرگوار اسلام نازل شده یعنی در دورانی نازل شده که پیانبر بزرگوار اسلام هنوز هجرت نکرده بودند و در مکه بودن به این آیات و سوره مکی میگویند. و اما آیات و سوره که بعد از هجرت پیانبر بزرگوار اسلام نازل شده و زمانی نازل شده که رسول الله صلی عليه علیه وسلم را ترک کرده بودند و ساکن مدینه بودند، به این آیات و سوره مدنی می این سوره ای که امروز انشاءالله و تعالی ترجمه و توضیح داده خواهد شد یکی از سوره که قبل از هجرت پیانبر بزرگوار اسلام نازل شده یعنی سوره مکی. آیات و سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده عموماً مختصر جملات کوتاه و پرمحتوی است و اما آیاتی که بعد از هجرت نازل می شود و در مدینه نازل می شود این آیات و سوره ها عموما آیات طولانی و آیاتی است که از نظر کلمات نسبت به آیات دوران مکی بیشترند پیانبر بزرگوار اسلام زمانی که در مکه بودند بیشتر نسبت به مسائل عقیدتی و مسائل اعتقادی با مردم سخن میگفتند و آیاتی که در اون دور هم نازل میشد بیشتر همین گونه آیات است اما در دور مدنی بحث احکامات و دیگر مسائلی که یک جامعه نیاز دارد یا جریانات سیاسی، صالحی و جنگی اونها در دور مدنی نازل شد در این صورت هم بحثی از ابحاظ عقیده به نام اعتقاد به روز قیامت از اون بحث میکند مسئله اعتقاد به قیامت و اعتقاد به این که بعد از این دنیا دنیای دنیا دیگری خواهد آمد که در آن دنیا حساب و کتابی در کار خواهد بود بهشت و دوزخی خواهد بود و افراد اگر نیکوکار باشند و اعمال شایسته و کردار بایسته انجام داده باشند، خب جایگاهشون بهشت خواهد بود ولی اگر از خلافکاران و بزهکاران و طبخکاران باشند جایشون جهنم دارن. مسئله اعتقاد به قیامت تمام ادیان گذشته این مسئله را داشتند در دین یهودیت، در دین نصرانیت، در تمام ادیان گذشته این مسئله بوده. نه تنها این مسئله تمام مسائل اعتقادی در دینها فرق نمی ایمان به فرشتگان، ایمان به پیامبران، ایمان به کتابهای آسمانی، اعتقاد به مسئله خیر و شر و تقدیر، ایمان به روز قیامت، مساله حشر و نشر، مسئله جنت و دوزخ، تمام اینها در ادیان پیشین هم بوده. آنچه که در اینها فرق میکنه، مسائل فقهی و احکام متتوی است که در دورهای مختلف و زمانهای مختلف بشر نیاز به آن دارد، اینها در ادیان با هم فرق لذا اعتقاد به روز قیامت از مسائلی که تمام دینه ها اون اتفاق نظر دارند و در قیامت و بودن قیامت حکمت های نافته که هر فرد اندک فکر کند پی میبرد که وجود قیامت و بودن آخرت ضروری است اگر فردی اعتقاد به قیامت داشته باشد و معتقد به آمدن دنیای علاوه از این دنیا باشد یک نوع کنترل شده گفتارش کردارش رفتارش همه و به همه کنترل شده چون این فرد معتقد است اگر حرفی خوبی بگوید یابدی کار شایسته ای را بکند یا کار ناشایستی حرکات موافق شرعی انجام داد یا خلاف شرعی همه و همه اینها را باید یک روز دید این فرد کنترل شده و حساب شده جلو می میرود اما فردی که عقیده به قیامت نداشته باشد و فقط دنیا را همه چیز بداند آن هیچ وقت کارش حساب شده نیست شما نگاه کنید اگر یک فرد از مقاضه جنس برای خودش خرید کنه و قرار باشه یک ماه بعد یا دو ماه بعد این بدهکاری مقاضه را پرداخت کنه این حساب شده جنس میاره. بی مهابا و بدون توجه اجناس را نمیاره. اما اگر یک فرد مقاضه مال خودش باشه حساب و کتابی نباشه دیگه اونجا دیگه هر چی دلش بخواد بر میداره و میبره میگه فردا که و کتاب که نیست. بچه اون کتی که این مغازه مال اونه هر وقت میاد داخل مغازه میشه میگه مغازه بابا یا بخور مفته. مسئله قیامت اینگونه فرده که عقیده داره که هر کاری را بکنه فردا باید پاسخگو باشه لذا اینجا حساب شده عمل ولی اگر عقیده نداشته باشه به قیامت بی حساب و بی کتاب چپ و راست میدنه هر کار که دلاشت بخواد انجام لذا عقیدهی به قیامت یک نوع ترمز و یک نوع برای افراد افراد ظالم افراد خوناشام، حکام مفسد سران خلافکار اشرار افراد لات لاعبالی اگر عقیده به قیامتشون درست باشه دست از این کارها میکشد یک فردی که ظلم میکند مال مردم میخورد تعدی میکند این فرد اگر عقیدهش به قیامت درست باشه ترمز میزنه و دست از این خلفها میکش لذا عقیده به قیامت یکی از حکمتهاش اینه که انسان را از ارتکاب خلاف ها جنایتها ها و جرمها میگیرد حکمت دیگری که در قیامت نهفته است دلگرمی برای ضافاظ یک فرد ضعیفه ظالم تو سرش میزند مالش را میخورد بهش ظلم میگوید حقش را بهش نمیدهد همونطور که امروز تو دنیا این مسئله بسیار نوالی اگر این فرد فقیر این فرد مظلوم این فرد تهیده این فردی که دستش به هیچ جا نمیرسه عقیدهی به قیامت نداشته باشه در درون خودش خودش را میخورد و شکنگهی روحی میشود و از برونش این ظالم او را میبلعد اما وقتی که ای به قیامت داره یک نوع تقویت روحی میشود میگوید ایرادو ندارد امروز من نمیتوانم از این حاکم ظالم از این تد خدای ظالم از این فرد شرور حقم را بگیرم روزی خواهد آمد که این با تمام قدرتش با تمام شروریتش سربزانو و دلایل در جلوی من خواهد آمد و از من حق قلبی خواهد کرد. این یک نوع دلگرمی است برای مظلوم ها عقیده به قیامت اگر فقرا اعتقاد به قیامت نداشته باشند مانند فقرای کفار این دنیا برایشون تاریکه چون در دنیا لباس برای فوشیدن ندارند خوراک برای خوردن ندارند عزت و اعتبار اجتماعی کمتر دارند لذا دنیای با این روشنی بر اونها تاریک می شود اما یه معمن فقیر وقتی عقیده به قیامت دارد دنیا را با تمام جبدبا و کبکبه و با تمام ساز و برگشت فنی و گذرا میداند دنیای را دنیای دیگر میداند دنیا هر چند هم برش تخت باشد از نظر ظاهری خیلی برش زیباست بنابر همین است که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید از دنیا تکن المؤمن و جنات کافر. دنیا بهشت یک کافر و زندان یک مؤمنه از این نظر که سختی ها و بلاها و همه چیزهای دنیا در مقابله آخرت چیزی نیستن. مومن دوست داره تو این زندان زندگی کنه اما خودش آزاد باشه همانطور که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرمایند که ما دایف علاله دایبی این سجنونی فسجنی خلوتون ان غربونی فقربتی سیاحتون و این قتلونی فقتلی شهادتون او کما قال دشمن میخواد با من چه کار کنه؟ خب من زندان کنه زندان برایم خلوتگاه برای عبادته. مانند اینکه یک فرد در یک جاهی نشسته ذکر رو از کار میکنه. خب منم تو زندان با خدایم نیاز میکنم در خلوت و در بی به دنیا در خانه تنهایی الله را پراستش میکنم. اگر دشمن من منو کنه از وطنم ببره به وطن دیگری بگه زندگی کن خب اشکال نداره یه جهانگردی دنیا خدا را میگردم ولی با این وجودم خدا را عبادت میکنم فوقش اگر منو بکشن که میشه خب کشتنم به شهادت به هدف خودم میرسه مؤمن اینطور دیدی داره نسبت به دنیا و اینطور دیدی داره نسبت به آخرت لذا اعتقاد به آخرت دنیا تاریک دنیای پر تختی و مشکلات را بر انسان آسان می این زندانی که برای مؤمنه این را بر انسان آزاد می چرا که انسان دو نوع زندانی داره و افراد دو نوع بردگی دارند. یک بردگی جسمی، زندانی جسمی، یک فرد را جسمش برده کردن ازش کار میگیرند یا جسمش را بردن در چهار زندان کردن. این فرد اگر از نظر فکری از نظر دیدایی از نظر ایداری آزاد باشد این زندان برش معاییی نداره. اما یک فرد را شما تو دنیا آزاد بگذارید برده فکری خودتون قرار بدید آب میخوره باید از مشوره کنه لباس میپوشه باید با شور شما باشه راه میروه باید تحت نظر شما باشه این برده فکری این برده عقیدتی هرچند هم که آزاد باشد برده لذا مؤمنین با اعتقاد به قیامت از این بردگی ها از این زندان ها آزاد می و به فکر قیامتن به فکر جهان دیگر. اعتقاد به قیامت و عقیده به روز آخرت صبر در انسان می نهد. مشکلات را بر انسان آسان می یکبار اگر در دنیا تختی ببیند بی مشکلات ببیند بی بزبختی ببیند وقتی که عقیدهی به قیامت دارد و میفهمد که این سختی این مشکلات و این آفت ها در تقدیرش است و الله برای اون مناسب دیده و صبر و استقامت در اینها باعث و عجل ثواب می شود باعث رفع درجات در آخرت می شود مؤمن را صبور میکنه. تحمل مشکلات را برش آسان می‌شد. چرا در جهان اسلام خودکشی کمتره و در جهان کفر خودکشی بیشتره؟ چون اعتقاد به قیامت در جهان اسلام بهتره سختی ها را آسان می‌کنه بر انسان. کفاری که اعتیاد به قیامت ندارن یا اگر دارن آسان است؟ لقلق زبان بدون جا گرفتن در ریشه قلبه اونها از زندگی که تنگ میآیند آیند خودشونه می فکر میکنن با کشتنشون از سختی نجات یافتند ولی فلواقه در سختی افتادن عقیدهی به قیامت مشکلات را بر انسان آسان می کن. عقیده به قیامت سروتمندها پولدارها کسانی که در ناز و نعمتند اونها را نمیگذارد دست به قرور بزنند قرور مقرورین کبر متکبرین شرور اشرار را اعتقاد به قیامت پایین میاره وقتی که میدانه تکبر بده قرور بده شرور بده روزی میاد که نسبت به این قرور و شرورش ازش سال خواهد شد اینجا میاد درجه تکبر و قرورش میاد پایین کنه اینجاست که مجبور میشه سر توازع پایین کنه اینجا مجبور میشه از قرورش بکاهد نزا اعتقاد به قیامت فواید زیادی داره اما اینکه الله مهربان آمدن روز قیامت را برای افراد مشخص نکرد نگفت چند سال بعد میاد علائمی مشخصات زمان بروزش را در اهادیث و آیات میخوانید اما دقیقا چه تاریخی میاد و چه تاریخی نمیاد این را الله مهربان گرفته تا که این دنیا برای مردم بیلذت نشه از لذات دنیا هم بهرهمند بشند از عمرشون فایده ای ببرن به فردی اگر بگوین ده سال بعد حکم اعدامت میاد این ده سال برش همش غم هم و مصوبه. ولی اگر یک ساعت بعد اعدامش کنن بهش نگن همین یک ساعتم بالذت با لذت قیمی. اگر به ما میگفتن فلان تاریخ میمیریم یا فلان تاریخ قیامت بفا میشه هیچ دلبستگی به هیچ کاری نداشت الله میروان را در پرده غیب نهاد، حتی خود پیامبران هم نمیدانند که دقیقاً کی قیامت میاد مشخصاتش، علائمش، حالاتش را بیان کردن اما دقیقاً چه وقتی میاد نه، اینا ما حکمت‌های الهی است. اینوری ای که خدمت شما ترجمه خواهم نمود درباره همین قیامت. درباره همین عقیده‌ای است که تمام ادیان به این عقیده معتقد بودند و اون را قبول داشت الله مهربان می فرماید ازازو زلت الارض و زلزال زمانی که این زمین تکان بخورد تکان شدیدش برزد و با لرزیدنش تمام چیزهای همبسته را از هم بتاشوند ان نظر زلت قیامت خیلی سخته شما ببینید زلزله های رشته که رشتریه که در دنیا میاد ساختمان های محکم را زیر رو میکنه. اما زلزله قیامت خیلی به دهجه بالاتر از اینه تمام ساختمان ها چیزای چیزهای همه و همه نابود می در اون وقت چه اتفاق میافتد و وقت الارض و اتقار. زمین اون بار سنگین خودش که وجود این انسان ها بوده این را می اندازه انسان های مرده از قبر میان بیرون بعد از سور دوم اطرافی بار سنگینی بوده بر دوش این زمین امانتی بوده در شکم این زمین میاندازد بیرون <تصفيق> و قال الانسان ما انسان وقت این حالت عجیب و قریب و این حالت وحشتناک را میبیند میگوید این زمین را چه شده که امروز به لرزه آمد و ما را انداخت بیرون <تصفيق> یوم ایزن تو حد سو اخبارها اون روز زمین میگه جریاناتی داره اخبارش را بیان میکنه این زمین اخبار زمین چیه که برای ما بیان میکنه با این نرد بکعه حالها که این کار را زمین از پیش خودش نکرده در حال خودش نیست الله مهرمان بهش الهام کرده که این کار را بکنه چرا و چه خواهد شد یومه دنیا الناس ناسو اشتا این اتفاق افتاده تا که مردم پراکنده پراکنده از قبرها بیرون شدن تا که اعمال اونها به اونها داده شدن کدوم اعمال؟ اعمال که در دنیا کردن چ نیک از تو چه, چه بد هر که کشت بد کند خود بد کدوم اعمال همون اعمال دنیا همون قتل همون شراب همون کبابها در یک ردیف همون نماز ها و حجها در ردیف دیگر اینها را ببینن الله. تو دنیا دارالعمل آخرت دارالجزوه الله. اینجا زحمت بکش، اونجا پاداش ببین نگه رو اعمال هم تا که کردارشو نبید کرداری که کردن شایدم فراموش کردن عمدن کردن خطاان کردن جبرن کردن در علنن کردن در تنهایی کردن در روشنه روز مرتکب شدن در تاریکی شب انجام دادن لیور و اعماله تو که اعمالشون ببینن کردارشونه رو ببینن که گل کاشتن یا خار کاشتن تا این ببینن بعدا چی میشه؟ تعمال را دیدیم لیست گناه ها رو لیست سواه ها را دیدیم نتیجه چی میشه بست و من یعنی مسخال ذره خیره و من یعنی مسخال ذره شره میره هر به یه ذره کار کرده شرده باشه اونه میبیند یعنی پاداشش میبیند و حرکت به یه ذره کار بس کرده اون رو همین این آیه قرآن که ذره هم انجام بشود چه خوب و چه بد باید ببینیم این یک خوشدارید در زمان یاران پیامبر اعمال بزرگ و کوچک برایشون نداشت چه در بعد عبادات و اطاعت چه در بعد گناهان و خلافات. اونا در عبادات آنقدر پیش قدم که نمی این مستحبی هست یا سنتی این فردی هست یا واجبی همه و همه را عمل می شد. و در بود گناهان اینه نمی که این سقیر است یا این کبیر است، این کمتر گناه داره یا این بیشتر از همه گناهان پرشید می شد. در روایت بخاری می آید که انسه بن مالک به تابعه این که شما یک کارهای میکنید کنید هیفی اویون کم من شهر در جلو چشمان شما انقدر بی ارزش و بی اهمیت که از مو تر اما کننا نعدده ها من الموبقات ما در زمان پیامبر این گناهان را که شما کوچک می دانید. شما کم اهمیت می دهید. ما از گناهان حلق کننده تصبر می تاید. بنابر همین بود که یاران پیامبر می آمدن می ای ایون اعمال اصل زهل یا می آمدن و می گفتن ایون زن به این لله اصل کدوم عمل از همه تا انجامش بدیم و کدوم گناه از همه بزرگتره تا ازش پرهیز کن این روش صحابه بود این طریقه و دیدگاه صحابه بود اونها فهمیده بودن فمن عمل مثقال ذرت خیره یره یعنی چه ومن یعمل مثقال ذرت شره یره از ما چی می خواه. اما امروزه شده بره امروزه دیدگاه مسلمان ها نسبت به گناهان عوض شده اونها در بود عبادات کوچک و بزرگ نداشت همه به همه را عمل می کردن. ولی در دید ما بزرگا را میکنیم کوچک ها به جای خود هست. نماز که رکن از ارکان اسلام هشتاد در تد مسلمان ها تارک و سلاط زکات که رکنی از ارکان اسلام هشتاد در تد تارک تا که زکات سودخاری که در اسلام خیلی حرامه خداوند گفته فعزن و به حرب من الله و رسول 99 درصد مسلمان ها سودخار اینه که پیش ما مسلمان های امروزی گناهان با اون بزرگی هم شده بیا هم میه این گناه های پوچه. در بود اطاعت و عبادات هم هم اینطوری بهترین عبادت ها و بهترین اطاعتها را رهام میکنیم. اونها حتی کوچک‌ترینشون هم انجام میدادند. حتی در بعد عبادت و اطاعت به مرحله رثیدی بودن سعادت که کوشش می‌کردن از پیامبر صلحط می‌گیرن. اما پیامبر جلویشون می می‌گرفت، احساساتشون رو کنترل می‌کرد، راه متوسطه بهشون نشون میداد. در روایت بخاری و مسلم و دیگر های حدیثی میاد که سه نفر آمدن خانه ازواج مطهرات و از عایشه صدیقه رضی الله عنها پرسیدند که پیامبر در خانه چه دور عبادت میکنه؟ آی چیز دیگه روش عبادت در خانه را گفتن، تا تو مسجد و بیرون از خانه را که جدی بودن. این صحابه وقتی که من که پیامبر در خانه چه روشی و چه طریقه عبادی داره، میگن ما کجا با پیامبر بزرگوار اسلام کجا؟ خداوند گناه پشین و پیشینشون و بخشیده ایشون معصومن ما که گناهکاریم. لذا ما باید در عبادت از پیامبر سبقت بگیریم. یکی میگه من شبها را تا به صبح عبادت میکنم شب نمیخوابم دیگری میگه من روزهای سال را همه وه همه روزه نفلی میگیرم سومی میگه من زن نهمیگیرم تا که بتوانم بهتر اطاعت و عبادت ببینید که در بعد عبادت و اطاعت حتی اعمال پیانبر را کم تصبر می میگفتن ایشون شخص محسومه محسوم تمام عبادت کنه کافیه ما گناهکارها ما خلافکارها ما کسانی که محسوم نیستیم ما کسانی که شیطان بر ما تسلط داره ما باید در بود عبادت و اطاعت اشربی کنیم و در ترک گناهان از پیامبر سبقت بگیریم اون پیامبر که می فرماید اما به بالله و از لله از همه من خدا را بهتر شناختم و میدانم و من از همه شما ما من بالاتره صحابه میخوان از پیامبر سبقت اما میخوان از راهی برن که این راه راه تعدل نیست اسلام افرات و را دوست نداره اسلام درویش صفتی حتبف و را رد میکنه اسلام میگه راه اعتدار نه به دنیا به که آخرت را فراموش کنید نه به فکر هماش آخرت باشید که دنیا را فراموش کنید ولتن سنتیب که من الدنیا رب نواتنا فی الدنیا و وفی الاصلات هر دو را از به اسلام به عنوان یک رهبر به عنوان یک کسی که اومده تا این امت را اصلاح کنه میره در خانهش میگه شما سه نفر اومده بودید این حرفا رو زدید میگم بله یارتورالو تیامر میفهمد که این حرفشون این سخنشون احساسات درست بود اما روش غلط بود میفرماید نه این کار را نکن. من روزه نسلی هم میگیرم ولی بعضی از ایام سال رو هم میخورم من شب عبادت میکنم شب برای خواب هم و برای استراحتم نیاز دارم میرم میخوابم من زن هم گرفتم و ازدواج هم میکنم که من رقبه آنسون نتی این روش منه. این طریقه منه. هلکس از روش و طریقه من سر پیچه راه خلاف طریقه من بره. و اون من نیست. این بود دید صحابه نسبت به اطاعت و عبادت. ولی خود ما را نگاه کنیم. در هر بوده که ما نگاه میکنیم میبینیم. بسیار کوتاه بسیار بیتوجهیم. بسیار بی اهمیتیم در بود عقیده نگاه کنیم می بینیم ما پر از خرافات و شرک در اعمال و اتعاط نگاه میکنیم پر از بدعت و رسومات جاهلیت تو معاملات ما نگاه میکنیم کنیم پر از سوز و حرام خاری هر جا نگاه میکنیم کنیم می بینیم بوی از اسلام نیست لذا ما اگر واقعا عقیدهی به قیامت داریم و میگیم این قرآن حق و درست من و من یعمل مثقال زررتن خیره یره و یعمل مثقال زررتن شره یره باید ما رو کنترل کنیم ذرات مرکات ما و تکنات ما رفتار گفتار ما زیر زرابین الهی و جرابین مخی خدایی فکر نکنیم که اگر کاری را کردیم، ظلمی را کردیم، جنایتی را کردیم، عبادتی را پس کردیم، حق الله را دیر پا گذاشتیم، حق والدین را نادیده گرفتیم، حق همسایه را زیر پا گرفتیم یا اینکه به کسی ظلم متعدی کردیم، حساب و کتابی در کار نخواهد بود، نه. فمن يعمل مثقال و من عمل مثقال ذره همه را باید دی لذا باید حساس بود و حساب شده جلو رفت اگر بی حساب و کتاب جلو رفتیم بی کوجه جلو رفتیم با این دیدگاه قلط رفتیم جلو جز حلالکت و رسوایی چیزی نخواهد روز قیامت هم افسوس و تعصف ولی اونجا افسوس چفاید داریم اونجا کار از کار گذشتیم لذا قبل از این که ما به مرحله برسیم که پشیمانی ایمانی فایده ای ندارد افسوس مشکلی را حل نمی کند. همین حالا پشیمان شده و پریشان شده و دیدگاه ما را نسبت به گناهان و عبادت اول کنیم تا که راه درستتر، روش بهتر تریغه صحیحتر بر روش یاران پیانبر و پیامبر بریم تا اینشالله دنیا و آخرت ما آباد و دنیای آخرت ما سرحال و از شادی و خوشی باشد استقرالله علی و